بسم الله الرحمن الرحیم کلاس مبانی فقه نظام ساد استاد مادر شاهی الله علیه و علی اهل بیت تیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم مجمعین من الان إلى قیام يوم الدين. اللهم كن لعليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى رأيه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا محافظا مقايدا مناصرا مدليلا معينا. حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيع. خب عزیزان کنومی از شما ها مطالعات اقتصادی داشتید یا راجشت... کتب آقای راجشت... شما چی؟ شما دست بلند کردید نه حالا با تهاجه اینکه که اونم محدودتر شد و شما هم طبیعتا خسته هستید از چند روز درس پرسته هم من می کنم یکم با ادبیات و وضعیتر توضیح بدم خدمتتون مباحث رو مقدمات مقدماتی کم سرتر پیش بریم ببینیم که ایشالا به کجا خواهیم بازیم در بحث اقتصاد اسلامی کسی که به احکام اسلامی مبانی اسلام و قواعد و اصول مرتبط با مواس اسلامی توجه بکنه خواهد یافت که نظام اقتصادی اسلام نظام نه نظام سرمایه‌داری است نه نظام سوسیالیستی و دولت سالاری است و نه نظام مختلط بین اینها نظام اقتصادی اسلام مردم سالاریه اقتصادی دینی است حالا این یعنی چی برای اینکه این رو بخواییم مشخص بکنیم قالب نگاه ها به نظام اقتصادی اسلام در این پاسخ به این پرسش که بالاخره در اقتصاد دولت باید دخالت بکنه یا نکنه نظام سمه ساله دولت هیچ دخالت نکنه سوسیالیست ها آقا همه چیز رو دولت بیاد مشخص بکنه بعد میپرسیدن آقا نظام اقتصادی اسلام چیه گفتن یک چیزی بین این ها حالا مثلا بین این نظام ها یک جایی بین این سر حد رو باید انتخاب بکنیم به نام نظام اقتصادی اسلام با قول اون ناما یک این وسط اقتصادی حالت کلتحشنگ داره مزید کلتحشنگی چیم مزید. مکان پسنگ یا استعارو مکان پسنگ چیزی هست مکان پسنگ فارسیه فارسی قندیل میشه کلفاشم ولی راست به اون نداش می گفت نه چه لیک موشیه اینو استادمون گفت همیشه ما خاص یه شعری داره تر که گربه شیره در برابر موش لیک موش هست در برابر شیر دو تا طلبه داشتن این شعر رو می‌خوندن نمی‌فهمید که این لیک موش هست سر هم نوشته بود هرچی میخوام که گربه شیر است در برابر موش لیک موش است درباره شیر لیک موش است یعنی چی از رفیقش پسید این یه نیست لیک موش است درباره شیر نه هر چی فکر نفهم گفت نمیدونم چی ولی یه چیزی بین شیر و موش باید باشه موجودی بین شیر و موش نمیدونم دقیقا چی حالا اقتصاد اسلامی این لیک موشی بین این دوتا یه مثلا دلار سالادی و سامور سالادی این بسته نمیدونیم چیه خیلی نگاهشون به نظام اقتصادی اسلام یه لیکموش اینطوری هست در حالی که اگر کسی واقعا واقعیات نظام های اقتصادی کو دنیا رو ببینه میره نه دولت سالاری محضی که موجوده الان و نه ساموه سالاری محض دولت سالار محض با شکست کمونیست و ساموه سالار محض با شکست بازار و لیبرالیست الان هیچ دولتی و هیچ سازمان و نظام اقتصادی تو دنیا نیست که سوسیالیست محص یا دیواردیست محص باشه همه نظام های عالم اقتصادی نظام های هم وقتی یه سوال پیش میاد این سوال اینه پس نظام اقتصادی اصلاً چه فرده های بگه داره عملا هم میبینیم که هیچ تفاوتی رو آدم خیلی توش پیدا نمی‌کنه هایی که نظام مختلط گرفتن بعد مردم واقعا براتون سوال پیش میاد که خب یعنی چی نظام اقتصادی اسلام نوع نگاه که یک لیکمووش بین این دو تا اولا باعث میشه که تفاوت مهمونی تو ساختار اقتصادی آدم پیدا نکنه قالب بحث ها در مواسه نظام های اقتصادی به مبانی یا نه اقتصاد اسلام مبانیش فرق میکنه یا اهدافش فرق میکنه خب بابا مبانی و اهدافش خود این ساختار خود واقعیت اقتصادی ش هم متفاوت است نیست یعنی با یه مبانی مختلف به ساختار واحد رسیدید یا با ساختار واحد میخواد اهداف مختلف رو پیگیری بکنید این مسئله و عدم ورود بسیاری از اندیشمندان اقتصادی ما به طراحی ساختار اقتصادی اسلام خود ساختار کاری به مبانی و اهداف نداشته باشیم یعنی از اینا بیزداریم اونها نمونیم این باعث شده که مردم احساس باقیم تفاوت ما جدی بین اقتصاد اسلام با سایر اقتصادها وجود نداره. الا من و کتابه قرد روی که میخوندم تنه میزدن یاره اقتصاد اسلامی که میگن تفاوت این آنچنانی جز چند تا توصیه های اخلاقی میشنن بچه خوبی باشید نمیدونم دروح توی معامل نگید مثلا هم گروه کنان نزاری تو, خب تو حالا دیگه خیلی چیز باشه مثلا اصراف هم نکنید همین دیگه شخص دستان این مشکلات زیادی به ایجاد میکنه یکی از اونها اینه که نه اگر ما دنبال ساختار و خود اجزار نظام اقتصادی اسلام داریم از طرف اهداف نظام اقتصادی اسلام تقوی بیدا نمیکنه چرا؟ چون شما برای اون هدف از بزیده خاص خودش استفاده نکردید دوم اینه که بطه از اون حتی افتاق نظام افتاق هم به دست نمیاد. چرا؟ چون برداشتید اون انسجامی که تو نظام های وجود داره با افتاقام اسلامی به همین زدید بانک وقتی ایچیز میشه میگه آقا او رو میگه آقا ربا رو دست بذاری کل بانک میزه و همه مثلا اقتصاد رو با ربا تندیم میکنی مینن نه. ربا مشکل داره خب باشه بعد همون مکانیسم غربی هم کارشو از دست میده میشه وضعیت کنونی بانک ها که نه کارکرد اسلامی دارن و نه حتی کارکرد غربی دارن برای همین خیلی مهمه که ما بیایم نظام اقتصادی خودمون رو تسهمیم و بعد از اینکه فهمیدیم بیایم برای این نظام اقتصادی خودمون طراحی زی ساختارها و اجزاء زی... این نظام اقتصادی مثل بانک و بازار و هست اینها رو داشته باشه به نظر ما اصلا نظامی اقتصادی اسلام تو این خط نیست که بگیم یا سرمایه است یا بگیم که دولت سالاری یا این یه لیکموشه که بین اینها که حالا بیشتر از نظام‌ها بیشتر گرایش دارن به دولت از نگاه گرایش بیشتر گرایش دارن به بازار نه به نظر من تو این خدمت یک ماهیتی متفاوت از همه اینها داره بلکه مردم سالاری اقتصادی دینیست و این رو میشه در پنج اصل آزادی اقتصادی مالکیت ادالت حاکمیت ارزش ها و حاکمیت ولی خدا توضیحش بدیم قبل از این طبیعتاً بعد این نگاهی به نظام های اقتصادی دیگه داشته باشیم صلوات بفرستید چون تا نفهمیم ببین نظام ها چی هستند دارن چی کار میکنن تفاوت رو نمیتونیم به اول لا اله هست بعد الا الله باید نفر معبودای دیگر رو بکنیم تا بعد اثبات خدا رو بتونیم داشته باشیم حتی اینجا خیلی نفسشون نفششون توصیف می‌کنم. بر اساس این حصول نظام سرما سالار مالکیت رو گفته مالکیت فردی و مسلم هر فردی میتوارند مالک بشه محدودیتی یعنی هم برش وجود ندارند آزادی تقریبا نامحدود. بگیم تقریباً چون خودشون هم یک حدهای رو میذارند مثلا مخصم جایی که با آزادی دیگران سر بکن و برای این آزادی هیچ چیزی یا هیچ کسی نود محدودیت خواهد بشه دولت یا حتی دین اگر دین بخواد محدودیت برای اقتصاد خواهد بشه اقتصاد میزه حتی اکتر سازی سود شخصی تو این نظام عزد بشه. و دولت تو اقتصاد دخالت میگن نباید بکنه و اقتصاد بر توسید بازار آزاد تنظیم بشه میگن اگر شما ول بکنید مردم رو مردم گرگند مردم حصولند مردم حریستند اینا خیلی صفات خوبیه چه وقت این بشه تو هم گرگوشی وقت این حواسش به تو هستونم اونم حواسش به تو هست بهترین نه از شکل میگیره در مجموع بهترین کیفیت کمترین قیمت شک خواهد گرفت. حالا محصوی جدی دقیق کردن ها خب ادالت اجتماعی رو چطوری به دست بیاریم؟ میگن آقا اگر میخواید منافع جمعی شکل بگیره با مکانیزم بازار آزاد یه دست نامرئی وجود داره همیشون رو خود شروع داره اینا باید بیدت ادبیات اقتصادی رو بخونید ببینید چه ادبیات بزرگی پویستر این هست و خیلی جا آدم اگر نگاه کنه احساس مونه هست هرشون بکی نیست یعنی میگه آقا شما مثلا توی قیمت ها داخلت نکنید بذاری قیمت بره بایده چت اتفاق میفته گندم بره بالا اون وقت گندم کاشتن برای افراد سوددار میشه افراد من چیکار میکنن امسال گندم رفت خود مردم فشارมา درست اما کاشت گندم سودآور میشه همهشون میگن گندم کاشتن گندم بکاران و عرضه زیاد میشه ارزش که زیاد بشه قیمت میاد تعادل میشه شما وقتی که میایی توی بازار دخالت می‌کنین چون قیمت نفت بادا قیمت میارین پایین این بدبخت قیمت گندمش رو ورزید پایین اما کارگرش با همون قیمت بادا باید چیز بکنه بعدش آخرش به سود نمیرسه بعدن همون افصادی هم دیگه گندم داشتن تولید میکردن همون رو هم تولید دیگه نخواهند کرد بعد بازار ورطاد میشه اما دولت واسه دخالت میکن. این نکته است ای که حالا روش تسکیل دارن و استعلا می کنه یکی از استعلا خیلی سبک و راحت که قابل فهم باشه برای عزیزان شما ناکنید داخل دل بکنید مخصوصا چند خوب میشه هر جا دولت مد دخالتش خراب میشه این ادبیات که الان ادبیات حاکم بر اندیشمندان لیبرال داخلی هم همین خب نتیجه چه اتفاقی؟ افتاد کار ندارم به اینکه که نمیخوام بکنم نتیجه نتیجه ایجاد انحصارات بزرگ شد وقتی که آزادی شد طبیعتا اوناهایی که پولدارتر بودن تونستن تو این رقابت بقیه رو کنار بزنن و ایجاد انحصار کرد. و وقتی که انحصار شد اون چیزی که می آقا خب بقیه گرون شد مثلا بقیه بیان ورود پیدا بکن وقتی این ها انحصاری کردن اجازه گلود به دیگرها را عملا از ارسد اقتصادی حدشون گردن قوله های بزرگ اقتصادی به وجود اومد اومد این نتیجه ازش شکر گرفت و اون این که تولید انبوه متمرکز شکر گرفت این روش خواهش میگم توجه بکن اگر این رو عرض بکنیم یک ساعت جلو تو بس تولید انبوه متمرکز نکنید قبل از سرمایه‌داری تولید انبوه شکل می‌گیره ولی ای یعنی هر کسی برای خودش تولید می‌کنه اونم برای خودش تولید می‌کنه اینم برای خودش تولید می‌کنه این یه چیزی تولید میکرد محصول او رو انجام میداد اون هم یه تولید میکرد محصولش به درزه میخواد این یه چیز تولید میکرد بعد در مجموع این ارتباطاتش با هم تولید انبوهی شکل میگرد که مثلا چین با جاده عبدیشم برای کل جهان تولیدات داشت ایران صادراتش به کل جهان زمان های گذاشته میرسید نستاجیه های ایران معروف ب همز بعد از تولیداتوش توی جهان تادر می شود. یعنی انقل موازاد تولید هم داشت اما صورت جزایر خورد تولید انبوه در مجموع رخ می‌داد. داد چیکارش چی کارش کردن؟ یک کاری کردن نظام اقتصادی رو طوری ترراهی کردن که برای فعالیت های بزرگ احیط سرمایه های کلانی به وجود اومد که این سرمایه‌های کلان باعث میشه فقط ایده محدودی بتونن مالک این اقتصاد، مالک این فعالیت اقتصادی بشن. بقیه که تخصص این کار رو هم دارن، مجبور شدن که بیان چیکار بکنن، بیان عجیل اینها بشن. مثلا طرف متخصص مسئله چه مثلا مثلا خودرو فلان قسم برق خودرو از این اوله ولی هیچ برای خودش نمیتونه کار بکنه. اجیر بعد بره توی کارخونه و اونجا اجیر باشه. تا قبل از این اجیری بود. اینو خوب در نظر ولی اجیری شاگردی دوره گذار بود. یعنی افراد می اومدن شاگرد یه استاد میشدن یه ریختگری یک مغازه یک آمریکایی بود بعد کم کم خودش یاد میومد این کارا رو خودش انجام میداد. طوری طراحی کردن افراد نتوانند دیگه برن برای خودشون کار انجام بدن. از اول تا آخر اجیر موندن. اون وقت وقتی که اجیر شد تمام فعالیت رو رو از قبل به صاحب کارپونه فروخته دیگه. اجیر فعالیت رو فروخته. طبیعتاً اقتصاد مال عموم مردم دیگه نبود مال فقط اون سارگان اقتصادی بود محصولتی هم که تولید می شد مال افراد نبود مال عموم مردم شد مال اون سارگان اقتصادی شد اون کل گنده یعنی تولیدات انبو که همین تولیدات انبو مال کشه نفر بود. برای تولید کردن این یک عالم افراد کار می کنند اما یه حقوق دستمزد حد اقلی میرسید میرسه و سود کلانی که اون اونورا صاحب مالکش یه نفر میشه یه دستمزد حد عقلی. من همجه داخل پرانسوز یه نکته رو گم. ما اگر نظام اقتصادیمون رو هم از یه گریز بزنم تو نظام اقتصادی اسلام در احکام اسلامی عجیل شدن بشه دست مکرور کارمند شدن بشه دست مکرور چه کارمند دولتی چه کارمند بخش روز کارمند دولت که به مراتب بدتره خداوند به حضرت داوود بندت یا داود این نه است داوود داوود داود, داود رهبر فر... جامعه است داوود که بنده خوبی هست این نا انکه تأخیر من بایتر ما تنها مشکل تاینه که از بایتر ما لگذار جعده <تصفيق> داوود چل شبان روز گریه کرد خداوند فعلا نالمه تهای قران فعلا ناله الحديد و علمنا صنعت اللبوس لكم لتحصنكم من بس بعد آهم رو براش کردیم بهش زره سازی یاد دادیم چیون شروع کرد زره سر کردن در و زره ها رو میفروخت از این باب پول یک سال این کارو کرد قمایی درو دست خودش روپای خودش بایست اجیر دولت نباشه علاوه اینکه خودش حاکم دولت اینقدر این مسئله حاکساز وقت تو جامعه ما چطوره بیش از 90 در نه جامعه ما تا ماخ نظام اقتصادی رو طوری طراحی کردن که همه سلرفی کشکن برای استخدام اگه استخدام نباشه اصلا فکر میکنه بیکاره شغل نداره که تطبيق راستون میگه تو جنوب میناب یک از دوستان من، طرف میزبانم آبود، بعد باشم که کجاوند بود، 25 6 ساله، گفتم که، بهم کار میکنه، اینها، بود. تو زن من طرف من طرف عکی بود، اما خب بالاخره میزبان ما هست، و اش بختی از بختی، گفتم کارشی که من دیگرها، عکت، انشاالله، در یک کاری جور میشه میشوم. میرم گفتم چیکار داشت چی این شرکت نفتی که اینجا هست پس این استخدام قبول که نمی توی دی جای جز دوست خدماتی اینها این ها نه پس چطوری گذران زندگی میکنه کو فیچیهگرد گستان دی دارم ز روز مجاه دارم هفت کجا میکاری بعد؟ اصل اینا رو شغل نمیدونه شغل رو استخدام رسمی عجیری که تو امنیت شغلی مثلا اونجاست من داخل فرانسه شما خوب تجربه بکنید اگر نظام ما الان تورم باعث معضل شده قبلا باعث اصلا مساله ای به نام تورم رو نداشتیم قبلا مثلا 200 پیش 300 سال پیش بحرانی به نام تورم ما نداشتیم تورم برای چه جامعه ای مشکل داره؟ آبایی کیا؟ نه چه جامعه آقا شما بگید تورم چی ب... تو تورم آسیب می‌بینه؟ کیا؟ رب... کارمندار، کارگران، مدیران هر کسی که دستمزد ثابت میگیره هر کسی که حقوق بگیره هر کسی که حقوق بگیره حقوقش قیمت رفته بالا حقوقش رو بخوان ببرند بالا دو مرتبه قیمت عوامل تولید میره بالا دوعطو کالای گرانتر میشه نخوان ببرند بالا بهش فشار میاد دیگه قدرت خریدش کم میشه یه معذلیه که جهان رو درگیر خودش کرد اما همین تورم برای کسانی که مالک فعالیت اقتصادی خودشون هستن اتفاقا چقد خوبه کارخونه دارها یا بله تورم شد خب من قیمتی که محضم محضم اولیش رو ارگونتر خریده آنها دارم گرونتر میسوشم حتی مقاضه ای که حالا گرونتر میخرید گرونتر هم میسوشم نخواهد بود اگر ما یک طوری طراحی بکنیم حالا طراحی چگونه سر جای خودش بحث میکنیم و. که تو نظام اقتصادی اسلام به بجه اینکه 5 درصد مالک فعالیت خصوصی خود 70 درصد مالک فعالیت خصوصی 30 درصد بله لازم اجیر باشن بیان هم اون اول کار باید عاجیر بود قبول دارم چراشون باید سرمایه‌ای کسب کنه و تجربه ای توی بازار بدون این شکست نخواد ولی الان طوری شده تکنسین ترین افراد با تجربه ترین و دانشمندترین افراد هم نمیتونن خودش فعالیتی بکنن بعد عاجیر اون شرکت بزرگ بشه من یه سکت کنی شما فهممیدم اینه که مثلا یعنی هرکس برای خودشون برای مثلا قبلا مثلا زمان شاهی جا رو نامویده میگه که اومده از اصلا کرده کردن خب هرکسی تا زمین خودشون بلی خب اینا اون زمان چی شد جاوت ندازه کندن اصلا این کشوری کار مثلا یه شیدی بوده شده که هر کشوری که اومدن کلا فهم یعنی قبلا چه برای که قبلا کارگر لو، الان صاحب اصلاحات کار سیاسی بود. نکته رو توجه مردم نبود. اصلاحات ارضی برای این بود که شاه او چاپیدن باباشو نداشت. باباش رضا خان قلدر بود ببخش اینقدر سریع دارم ازیز میکنم رضا خان قلدر بود مقتدر و تونست بسیاری از زمین, ها تس... زمین های جزیز رو تصاقب کنم و در مقابلش خانه ها خیلی جرعت مقابله نداشت وقتی که محمد رضا اومد خان ها نه ها مقابله کردم بعضی از شاخ شدن بعضی زمین های قبلا پدرشان گرفته بود اومدم تیز کرد برای زمین زدن خانه ها به عنوان یک صاحبان سرمایه این کار رو انجام که بعد بسیاری از همین زمین هایی که چیز شده بود خود سه دودتی و شاهوین ها اومدن از مردم به سان وقت خریدن که باید بتونن اون سیطر خودشون رو بله همه اینها ساخت ها میخواد همه اینها نمیخوام بگم اون،, اون کار کار اتنامی بود اصلا کار اتنامی نیست ساله اینار کرد. خواهی میکرد ولی بس برای میگیم اگر یه همچین ایدهی محقق بشه بود که افراد توی کاری که توانش رو دارن و تخصصش رو به دست آوردن این میشه که دیگر دیگری کاری کردن خودت کن. به جای که منافعش برای دیگری بشه، برای خودش برای خودت هم برای خودش بشه که بیت‌المنان من ملک خودش نیست اصلا من بیت‌المنان من ملک امام نیست اون منافیس من جایگاه خدا برای رهبری جامعه گذاشت ماعفا الله علی رسولی فمواوجهتم من فورا کنا لاذ السلام بعد ما معفا الله قال الله و الرسول و ذلخ فی برای امام انفال برای امام خود انفال الله و رسول خب فقط دلیل که این نیست اینقدر در عدل دلیلی که دلیل حضرت که تو تعبیری مکمان که خدای اللحظت دارم یه صلاح و دور و من آجر نفس او فقط حضره على نفسه رز خیلی آهودی است یه روشن مشخص هرکس اجیر بشه رز رو برای خودش بسته حضوره چرا؟ نمکه این تلاو یحذروه تماعصابه فوادربه چطور چطور رز رو برای خودش نبسته چون چو هر چیز در بر سر بشه چون تو فعل تو فروختیه دیگه میان ادله تو خیلی زیاد داریم یا اون تعبیری که اول لا اغیر دوغن مؤمن الله من حیث لا يحتسبون خدا عبا داره که مؤمن همه یه صور ثابت حساب شده داشته باشه آقا خودتون بندازید توی حالا اینا بحث مفصلی داد حالا بفهمم که <تصفح> خدا خیرت بده خدا خیر خدا خیرت بده ان که شما رو بر پدر مادرت رساله حفظ بکنه و اونم قد از <تصفيق> دولت های گذشته کوچیک بودن دولت های گذشته از اونور ور شاخ آفریقا دامه پیسند دولت های تا این ور آسیا میانه اینها ها بود دیگه اینا نمیتونستن برای خودشون سپر درست بکنن شمشیر درست بکنن آقا یه بیارن اسلحه جنگی حتی برای خودشون درست حتی این کار رو نکردن بابا اینم خوبه حداقل دقل برای خودشون یه وسط نقلیه درست چون حدیث رو شنیدید که جناب صفوان جمال اومد خدمت حضرت امام جواد علیه السلام امام جواد علیه چی فهمدن؟ گفتن کل دو شای اممه که حسنان همه چیزت عالیه ما خلا شای ام واحد جزیه چیز اکراغ که جمل کله ها در رجل که وقتش دردش این معروف دیگه که را دادی به این حارون و رشید بعد اون به هم گرد می آقا من برای حج میخواد بره حج شطر کرده دادم خودم هم نمیرم باش غلامه هم میفرستم حضرت میگن مگه پولش رو همون لحظه داد یا گذشته برگرده. برگرد خب پس دوست داری زنده بمونه تا برگرده هر کس به اندازه این مقدار که دوست داشته پولش رو زنده بمونه این قاصد با اون شریک. که بعد حال داستان داره میره شطراش رو همه میفروشه آن رشیدم میاد توبیخش میکنه میدونم اینا هم بمونه هستیم من پیر شدم و فلا اینا موسط اونجا افر کرد. اگر دوستی قدیمونه بیچارت میکن بابا حاکم چند شاید مثلا پنج برابر کشور ایران با چه منابع عظیمی که ریخت و پاشاشو نگاه بکنید اما وسط نقلیه نداشته حاکمی هست یک رفتیه پیغمبر اکرم گذاشته جان؟ امام کازم کردم اگر من جواد گفتم اشتباه لکی بود هموال امام کازم چه هم؟ اگر بخواید دستش نره بپرسیم امام کازم از کردن اگر کسایی کلات برای کشور که من نکمه از که آن بسیارم باید بسیارم بسیارم بسیارم که رو تا شروع نشون میدیدم تاسیسات ایران با من گفتم سیجارت نکنید کار نکنید ریسپنسر در خودش کار خو بذارید بحث خود من نگفتم که عاجر نخواهیم داشت. گفتم سی درصد مردم عاجر خواهند بود. کار تیمی هم میشه کرد عاجر هم میشه گرفت. لاکن اینطور نیست از هم تا آخر هم عاجر بمونه. وقتی کار رو یاد گرفت بعد اینم خودش یکی ای ساید کار خواهد شد در اینه کار تیمی استخدام همین هم هست ولی اکتفا به این بذار چند تا مثال بزنم چند تا مثال بزنم از نای کم خود. اولا بعضی چیزها رو میشه به صورت خورد انجام داد و ضرورتی به کلان کردنش نیست. پس اینجاها رو بریم به سمت خرد، مثل چی؟ مثل مغازه. آقا الان دارن میرن به سمت اینکه هایپر مارکت ها و اینها اونقدر بزرگ بشه طوری ارائه بشه که افراد خرد همه یه هایپر مارکت دیدن تو یه جور کل اینزه خرد درشکست میشه. وقت مجبورش هم بیان عجیر همین آدم بشه یعنی اون سودی که همه اونها می بردن اده زیادتونی کار نمی اونایی که کارگیرش رو میاد، بیان عجیر این آدم بشه چه ذراتی داره؟ بعضی چیزهای کلان رو میشه خوردش کرد و ذراتی به کلان نیست چند تا مثال بزنم اصلا بحثم فقط سه نیستیم یکی از اجزای نظام نفسده مثلا اطلاعید دوم شما حالا اشکال نداره خوبه این بحث رو. یه چند تا مثال بزنم بایم چیکار میشه که آقا ما بسته داره که علم رو به چه سمتی ببریم دست خودمون. نه کاملا دست خودم تولید برق تولید برق در تولید برق میتونیم چار بکنیم نیروگاه‌های تولید برق کلان بزنیم که هر کدوم از این چند هزار همت همت نه هزار می یا تومن چند هزار می همت یا همت سرمایه‌گذاری داشته باشیم طبیعتا این رو افراد عادینه بیا دولت باید وارد بشه یا سرمایه کلانی که حالا بانک ها داره طرف خاص قرار میگن درسته؟ خب توی دانشگونیان اومدن نه دانشگونیان این مال چین هم انداره این کار رو اجرام میکنه یک نیروگاه های تو دیده رو پوچک من چون تونیدم راتم کار کردم اطلاع دقیقش رو دارم که حدوداً دیویست متر جا میخواد برق حدود مثلا دو سه تا محله در یک شهر رو جواب میده از نظر اقتصادی فوق‌العاده به سرفه است در مجموع چرا؟ چون وقتی این کارکانه بزرگ میزنن این خطوط انتقال برق پرتی بسیار بالایی داره افت بلتاج بسیار بالا داره دو مرتبه باید ازگاه های تحریت بذارن این بغور برسونه یه yes. مشکل برای چیز به وجود بیاد کل شبکه بر زیر فشار خواهد رفت و بر شده مختلفی که داره آلاوی هم دیگه شد اینها به مراتب باداتاره من مال سال پیش بود که محاسب میکردم اجناسش رو از خارج بیارم سال پیش که قیمت دولار رویستی و مثلا 24 تونم بود محاسب کردم میشد 14 میلیارد چارده میلیارد تومن چیزی نیستش که افراد عادی نتونن توی جامعه اون رو چند تا فارغ و دانشگاهی مثلا الان کسی زمینی داشته باشه خونهی داشته باشه خونش مثلا تهران قیمت ها خیلی بالا خونش رو بفروشه یه چند نفر بشن یه چند بامه خوبی هم از بانک بگیرن دور از دسترس نیست چند تا از فاروق تحصیلا بیان 14 میلیارد تومن رو با همه خزینه ها یعنی کارگری تو طول مثلا اون چند سالی که اینا بعد 14 میلیارد داشته شن دیگه یه چیز بعد چقدرم خواهد داشت خب یه درده چند هزار همت میشه میلیارد نه چند هزار هزار میلیارد میشه 14 میلیارد وقت تعداد اینها که زیاد بشه توی مناطق حالا این یه برقمانو برق میتونیم بریم سموی بزاره بکنیم برقایش خورشیدی، اون که احتیاج به سمویه کلان نداره حالا دارم مثال های چیز میزنم که آرومارون برم تونای هایتیک هاش هم برم پشکار اونا که احتیاج به سای کلان نداره ولی واقع دولت سرمو نمی‌کنه اینجا مردم بیان تولید بکنن برقم مال خودشون مواقع الان چقدر مشکل برداری زمستون ها برزیاد سادرات بکنه. چقدر کشور ما فقط همش آفتابه از جنوب تقریبا یه همچین چیزی وجود داره که فقط آفتابه اینا رو خب خیلی منابعه از هم. بذارم یه مثال دیگه براتون بزنم پس بعضی چیزها رو میشه خرد کرد بعضی چیزها رو نمیشه خرد کرد اما میشه تقسیم کرد نه خواستم خوب تجربه کنم با مثال ها مثلا صنعت خودروسازی صنعت خودروسازی نمیشه خرد کرد آقا یه عده بیام تو خونه‌شون خودرو بسازم میشه نمیشه لپتاپ بیام یه عده تو لپ لپتاپ بسازم شده نیست اما صنعت خدسازی شیش هزار خورده قطعه داره چرا همه این شیش هزار خورده قطعه رو بعد یک کارخونه میاد بزنه الان چیزهای کارخونه ها همش چند کارخونه ها اما همه صاحبه میتویدونی خود سایپ هاست اونایی که برای سایپ ها میزنن و اونایی که برای ایران خود میزنن برای ایران خوده یعنی عملن مالی یکی آقا یک اتومبیل سازی ساختن یک اتومبیل بله خیلی هزینه سنگین داره اما کیا تکنتی ها اونها اونا هم مثلا که الان عجیر هم اونا بلدن از این کار رو خب ای اونا رو بکنه آقا چه لزه قالپاق سازی که دیگه خیلی هزینه نموگاه هست من تو خونه شنان قالپاق بزن دتگاه انتقال نیوه برگه یا یا تاقان ماشین یا دست پر انتقال نیرو اینا که خیلی چیز نمی خود. آقا بده مردم خودشون بیان این رو تولید بکنن و تعداد زیادی هم باشن بیان منتاج بکنن میرد چه اتفاق الان چرا دانشگاه و سنت بریده شده است، چون دانش وقتی که فارغ و میشه خودش نمیتواند برای خودش از اون تجربه و علم خودش استفاده بود بعد بیاد عجیر دیگران باشه اجیرم تعداد کمی رو میپسندن رانت خب بریده ولی اگر چیز بشه اونجا برای خودش لنت تولید کنه برای خودش میل لنگ تولید بکنه برای خودش شیشه ماشین رو برای خودش رنگ رو برای خودش اجزاء مختلف رو تولید بکنه حتی برای خودش موتور رو تولید بکنه این که میگم موتور چون من با شرکت‌های دانش داریم کار می‌کنیم الان. موتور پاهواد 4000 کیلومتری رو که هار سال رونماییشون 4000 کیلومتر پاهواد می‌رفت می‌بود ما رفتیم توی چیز ما رو 4 سال قبل. 2 سال قبل از رونمایی بشه. چند تا جوون، شاید مثلا تا جوون بودن، اومده بودن، اومدن ما, ما نشون دادن. و تستاشو چیزاشو همه‌شون ما نشون دادن. جاده بودن وقتی خرد بکنید خب بله سرمایه میخواست رفته بودن وامی جور کردن یه سری خیرینم یعنی سرم گذارانم توج کرده بودن بناخره تو این زمین اقدام کرده بودن خب وقتی اینا رو خرد بکنید ده ها نفر لن تولید کن ده ها نفر تولید بکن ولی چون مال خودشون هست اول این دلشون نیست و چون رقابت باید بکنن کیفیت رو مجبورم داشت اون کسی اونایی که دارن مثلا صد نفر هم صدها نفر هم میان منتاج بکنن منتاج، صرف منتاج کردن که دیگه هزینه های اونطور یه این گفته میخواد کن این باید بیاد هم کیفیت بادا میره هم اگر سودی برده میشه عموم مردم ناکنی الان میگن که آقا 4000 هزار نفر وجود بود فقط شیش هزار قطع اساسی ها ماشین داره خودرو داره کل ایران خود میگن 4000 تا شما فرض کن هر 6000 تا مثلا هر کلم ده نفره ده میگن نفر خیلی بعد بیشتر ده نفر اینا رو کلید بخوان بخون این چه صنعتی تو کل کشور ایجاد میشه کاری که آمریکا رو رشد داد تو جنگ جهانی دوم اجتاش هست به تو این تاریخ نگار آمریکایی کتابی هست اینجا نگاه خیلی جالبه که کل جهان درگیر جنگ شد، آمریکا اقتصادش یه دست رشد کرد. چرا؟ چون کشورو خودشون درگیر جنگ بودن، احتیاج به اسلحه و سلاح و مهمات و تو پتانک و تانک و داشتن. چون خودشون درگیر جنگ بودن، خیلی کارخونه‌هاشون میزد آمریکا دور از اینها بود. هی تولید میکرد به اینا می‌فروخت. هی تولید میکرد به اینها می‌فروخت. انقدر این رونق گرفت. که زنهای خاندار رو شما میبینید اونجا که مثلا اومده سماور خودش رو باید دستگاه بیختگری داره زوب میکنه و احتیال به آهن داره که این رو زیاد مثلا با یه دستگاه کچی که در اختیارش قرار دادن بیاد مثلا داره فشنگ طولیت بکنه لوله خمپاره تولید بکنه زنان خاندار این که میگن نمیشون این تو خودشون از همین راه رفتن که بعد البته این حسار ایجاد کردن و وقتی به اون قول دارستن همه اینا رو دارن این کار شما فقط فرض بکنید ساخت چیز قدروسازی ما به یک همچین چیز منجر بشه چه تحول بزرگ برای عموم مردم و ما مال خودشون اگر بد تورید بکنه از سحنه رقابت خواهد میشه مجبوره تو ابداع به خرج میده وقتی کسی مال خودش باشه دیگه از میشه باشه فکر میکنه کیسیت بالاتر میبره تو رقابت سایی میکنه بالاتر. بله بعضی جاها هست که اگه خورد شدنش سرفه به مقیاس ندارد اون رو هم ما داریم که خب چرا همش مالکش یه نفر باشند چقدر چند میلیون نفر؟ افراد شاغل در آموزش و یا پنج میلیون نفر رو پنج میلیون اگر هر کدوم اینها سی میلیون بیارن بسات، اصلا به سی میلیون وام میگن از 3 میلیون پنج میلیون چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ سی میلیون پنج میلیون تا 50 هزار همت میشه باهاش میشه سه تا پتوشیم خج بزرگترین پتوشیم خاورمیانه رو سه تا از ما رو باهش خب بیان طرح ها رو مردمی بکن چرا هاش باید یه نفر حالا بحث ها خیلی حالا ما خیلی وارد جدا نشین نه میشه نکنید ما بفهمیم تفاوت چیه بعد برای او به مردم راه بدیم انقدر سرف و ایده و اینها برای اجرایش فضل این ما همین الان تو مسیر غربی ایده هایی که تو افراد بود که آمه میشه همچین کارو کرد میشینن طراحی میکنن نشدنی ها رو شدهش میکنن من تو خونه نشسته باشم خرید بکنم بیارن تو مگه میشه با یه چیزی دسته باشه از این برای آدم بتونیم ها هم نشدها رو شده که آلا بعد این هم شده خواهند که ولی تا به ترهای این ولی میرسن نه اینا که داد بابا آشقا ببینید نه میشه شما یکی بی یام خورت من نمیگم خورت بکنن نه اولا برند از بند نمیره نمی. نمی چون میتونن افراد که مثلا این گفتم مثلا کارور دارن میگن یک خودرو رو دارن میسازن یه حدی بیان تضمین کیفیت میگن آقا اونایی که این کیفیت ما این برند رو انجام میدن اونم مردمی بشه ناکنید بشینید براش فکر بکنید وقتی که میبینید اسلام یک چیزی رو میگه اسلام تصریح داره ما دیگه دوگران اینا به عدلش خیلی نرسیده ما فل الله علا رسولهی الله و رسول ولد با کیلا لایکونه دولت هم بین الاغنی همین کن یکی از خطوط قرمز اسلام در مسئله اقتصاد اینه که دولت هم بینل افنی امک نشود مال و ثروت بین ابنییا فقط گردش نکنه. فقط دمنی مال که ثروت های اقتصاد جهان مملکت نباشد. این صریح قرآن این دیگه نمیشه تو تداول ثروت بین ابنی حرام است حاکمیت وظیفه دارد یا جره این رو خب نظامی که مبتعی بر تداول سروتی طبیعتا سهی نیست دیگه بانکی که بانکی که اصلا میگن آقا بانک ویژگی بانک سرمایه های خورد مردم رو جمع میکنه میده کلانش میکنه ببخشید و خیلی بی خود میکنه, میکنه. اگر مردم چی کار میکنه عملا بیش از 95 درصد منابع بانکی منابع بانکی به 2 درصد افراد جامعه دیست بیش از 95 تعداد تصیلات نه تون تصیلات خود زیاده منابع بانکی بیش از 95 درصد منابع بانکی به 2 درصد افراد بانک آینده، بانک پاسارگاد، اینها با خودشون صحبت کردیم میگن به خاطر قانون، قانون نبود کمتره ما فقط به 99 نفر تحویل میدیم، بیشترش هم نمیکنیم. این کل منابع مردم رو جمع میکنن. کل منابع مردم رو جمع میکنن، میلیونها نفر منابعشون رو میدن به یه نفر، این نفر بره باهاش چند ست برابر سود بگیرید ما اصلا انتخاط به بانکای که چرا سود کم میگیرید حق نداره نقدر سود کم بگیرید اونجایی که باید زیاد بگیرید و حق نداره نقدر زیاد بگیرید اونجایی که نباید بگیرید اونجاهایی که پول مردم رو دادید به یه نفر و او با پولهای انبوه یه دفت سودهاشون دیگه 20 درصد و 30 درصد نیست 10 برابر و 20 برابره. 20 برابر سود کرده با این بعد شما میاد ازش 20 درصد سود میگیرید از اون 20 درصد درستر دو 2 درصدو خودتون بردید 18 درصدشو میدید به میلیونها نفر با پول اونها پول میلیونها نفر این رفته این سودی کلان رو کرده خب بیاید سود درستو به مردم بدین ولی اونجایی که طرف یک وام کوچیکی گرفته که با این بامای کوچیک تو این ساختار خصوصی کاری نمیشه کرد سودی نمیشه لرابان از اون رو داری میگیرد میسردت میگیری بیخود میکنن خواهد خب میگیری زیاد میگیری ما تو تراحیه بانکداری اسلامی جو اصلا ساختار اشتباه اشتباه داری میزنی یه چیز دیگر رو باید حدف بکنی بانک اصلا به فهمی مشکل چیه و تفاوت کجاست این دیگه حالا <تصفيق> بخشیم درسته دیگه چلو جان خیلی نزدیکی خیلی نزدیکی نا کنیم دوتا نوی یک نفت وضع مطلوبه یک نفت وضع موجوده و یکی وضع گذار دوره گذار اولا بدونیم که وضع مطلوب چیه ما اومدیم وضع مطلوب وانترسومه تبرایی کرد. بعد خبتیم اون دوره گذارش هم دردانیم کنیم اتفاقا چون اونجایی که اسلام فوق ولادت فکری است خیلی پذیرش است. خیلی پذیرش کرده مطلب اونایی که کم حریت داشتن کیا حریت داشتن اونایی که اون وعده داشتن خیلی عجیبه کسانی که اون وعده داشتن خیلی حریت فکرشون بالاتر کسانی که تو دانشگاه اومدن دانشگاه اومدن فکر می‌کنم اونایی که اون ور خوندن حرفشون دیگه اص... اصال در چی که نمیشه تو ولی هفتن بلیه که خودشون رفتن اون طرف نه استادشون همون سریتمنیه که اینجا گفت میدوننه شما جا با فیوسر بحث کرد و جواب این... بعد میاد حرفی جاید راحت میشه من دوتا از فامیله هم کرده بعدی هم فامیله همونی دوتا از این ایرانی هایی بودن که تو دانشگاه شیکاگو آمریکا دکتر اقتصاد ایرانیایی که شیکاگو آمریکا اقتصاد دکترای خودش رو گرفت. با اونها بحثی کردم کاملا نظام غربی تو دانششون. تو آمریکا رفت دکترایش رو از بزرگترین دانشگاه اقتصادشون، دانشگاه شیکاگو. که الان های داخلی رو که میخوان متظاهر میگن یعنی بنا بچه های شیکاگو هست. چند دین از تعابیر شیکاگو. اینا اصلا دکتراشون از شیکاگو رفتن گرفت با اونها بحث مثلا میکنم انقدر برشون چه و عملیاتی به این عنوان که دیگه هیچ کاری نمونده نه ولی به این عنوان که اجگه کلانش به دست آمده حالا ما الان میخواستیم بگیم اقتصاد ما پنج ازده کردیم توضیح نخستین اول منابع رو توضیح میکنند بعد افراد رو این منابع میرن کار میکنند تولید میکنند پس اول توزیع ناقصه بعد تولید بعد از تولید یه محصولی رخ میده این محصول رو باز توزیع می حالا به عوامل یا به فقرا و نیازمند. بعد مبادله صورت بگیر و بعد مصرف تو همه اینها ما از احکام خود اسلام یعنی اینکه که داشتیم این بود که ما از روش نظام استفاده بکنیم نه روش عدم مقایله نه اینکه نظامهایی که قربیه ها ترراحی کردن و بیاریم ببینیم اسلام باش مغایرت داره یا نداره. هر جا مغایرت داشت سانسور بکنیم فقه سانسوری فقه اسلامی محصولش اسلامی نیست اگر ما تونستیم فیلمی که از هالیوود وود فیلم های هالی وودی رو اومدید سانسورش کردید چون فیلم اسلامی بانک هالیوودی هم اومدید اینجا سانسورش کردید میشه بانک اسلام. میشه واقعا خیلی شوارعدار استفاده با سانسور که با عدم اینکه طراحی رو اونها بکنن ما صرفا میبینیم اینجاش مثلا گیر داره بخوایم سانسورش بکنیم با سانسور که اسلامی میشه محمدیم از خود احکام ساختار رو سعی کردیم به دست مثلا حالا یه ساختار جالبی که در اسلام وجود داره در رابطه با بازار اینا رو باید بحث خود پول، بحث خلق پول، بحث بانک بحث بازار اینا مواهش که مطالبا مواهش مبادله هست در بازار اسلام یک حکم عجیبی داره یک ساختار عجیبی داره اولا پیامبر اکرم صلی الله علیه صلی <سطور> اللہ <سطور> ایوب اکرم وقتی که وارد مدینه شدن حکومت تشکیل داد با چه چیزی مواجه شدن با یه سری عقیل بدبخت و بیچاره اهل مدینه اوس و خضرت همیشه با هم درگیر جنگ بودن و بخاطر همین از نظر اقتصادی خیلی ضعیف اقتصادی اونجا سه تا قبیله یَهُودی بودن مکه ها مکی ها با خاطر تجارتی که می‌کردن بهتر بود ولی اخراج شدند الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله با یه لباسشون از طرز فرار کردن هیچی با خودشون یه سری ثقیل یه سری بیچاره امرشون اومد پیامبر اعظم اولین کاری که اومدن بازار اسلامه ترویج و اجرا کردن کاری کردن بعد از چند سال این مردم فقیر نه تنها مستوینه شدن موزاده. در آمد یاد شد که زکات جرد شد بعد از چند سال و همه بازارهای های یهودی ها که بازاره های یهودی ها بود خود به خود ممکن... مم... کنسل شد از این رفت تحتیل شد چی کار کردن اومدن از ادله اسلامی دست بازاران نمیتونه حکومت باشه و اینها را مجانی در افتاد مردم بزن خیلی چوده عجیبیست روایات را در دلیم سریح داریم قایده سبق چیه قایده سبق چند این سبق من سبقه الان مکانه فواهر حقو بهی این میشه خواهد نیسته هرکت از زودتر دویجه رفت هفته تبقه داره این میدونید حدیثش در حقیقه چیه جان این نیسته این میدونید حدیثش چیه این سوق المسلمین که مسجده سوق حامل حدیثش سور و بازار مسلمی مثل مسجد است مسجد رو کسی مالک میتونه بشه فمن متفره بر این فمن سبقه الان مکانن فا حق رو بگیرد هر کس دو ترگید مستحقش هست تا یه مدتی تا یه مدتی و بعد خان رسول تصدق علی المسلمین با اسواقهم تصدق صدقه داریم مجانی در اختیارشون قرار داد قال هذا سوقكم لا ينتقل ولا یخد علیكم خراج هیچ مالی تو ادله مختلف داریم از بازار نباید مالیات گرفته بشه حالا یه تحلیل اقتصادی می‌کنم چه تحولی ایجاد می‌کنه اگر چیزی بده خب از بازارها نباید مادیات گرفتشه بازارها ملک عمومی آزادانه مجانی در مردم قرار داده شده هر دست مصارف تو مدتی وسیعی داره بعضی بازارها روزانه بعضی بازارها هفتهی بعضی به نوع کالایی که تو بازارها تخصصی عرضه بشه خراج و مال اجاره کره حالی علیه السلام این یه خودم بیوت سوق کره اولم بیوت سوق یعنی حکومت اومده برای اینا خدا, خدا مجتمع تجاری ساخته بیوت سوق ولی هیچ کرایه ای در یافت نمید های کره ها. در حدیث دیگه است علی علیه السلام نمیه کنی یک کراه حلال حضرت هیچ موقع در حلال کره نداشت یعنی حلال نیست یا تو همه حلثه میفهمم مثل مسجده سوق مسلم مثل مسجده بعد جایگاه مسجد تو این سوق و این حالا میدونین این اتفاق بیافتی یعنی چی؟ یعنی برخلاف نظریات غربی که میگن آقا سیاست های اقتصادی یا امبساطی است امبساطی یعنی چی؟ یعنی رشد کالاها و اشتغال میره بالا اما تورم هم بروید قیمت ها هم میره بالا یا این است که طول قیمت ها رو میگیرن، اما اشتغال هم میاد پایین دولت رو از یکی انتخاب کن بازار اسلامی یا ارتفاع هم قیمت ها میاد پایین هم اشتغال خیلی میره بالا چیزی که از آن قرد توی توی چطور کالا ها الان کالایی که تولید میشه تا به دست مصرف کنن نه تا به دست خورد فروش میرسه چند تا چیز توی حزینه ها شید. تو قیمت چند تا چیز تحصیل کنید کمتر از نصف او هزینه تولید کمتر از نصف او یه چیزی که دارم میگم ان یقینام چون خودم تو بازار هستم دارم میگم من خیلی کار دارم انجام میدم و خاطرن واسه اقتصاد ما مجلس وارد بشیم کمتر از مثلش حظیم کل از این تولیدش بعد مقدار زیادی اجاره مکان‌ها است که واسطه مبادله شده حالا چون بازار اصلی که اون عمده فروشی هست و بعدش می خورده فروششون یعنی یه مغازه کوچیک رو میخوان اجاره بکنم ما مثلا ده میلیون رو زمین فقط اجاره مغازه معمولی ها مغازه بالای که خب این باید رو همه فروش رو در نظر و رو همه اینا ترشکم بکنی تا بتونید این رو در بیاری فقط همین رو در بیاری چه حضینه این گفت یعنی شاید اندازه همون حضینه چیز هست بعد خودش هم بعد سودی داشته بعد مالیات میاد روش حضینه همدونه هم بهش اضافه بکن این میشه کار آخان که مردم نیست حالا اگر هزینه چند و واسطه ای که توی چیز میخوره حضینه اجاره مقاض ازش کم میشه و همه میتونن بیان رقابت خیلی شدیدی ایجاد میشه سودهای خوش رو بیان بیانن و حضر اقل بکنن و بیشنگیه های دیگه ای که وجود داره الان کسان که تهران زندگی میکنن یه سری تو هر محلی مقاض جاهایی هست برای میبه و مایحتاج ضروری که شهردری با قیمت کم اجاره داده تو شهر اگر که من تدام دارم و من هر حفظه تقام بیرم تهران اونجا تفاوت قیمتش با مغازه بغلش تقریبا نسته و با باقیم مرزمتوه اگر ایناها نباشه خیلیش نمیتونن زندگی بود و ما رفتیم مثلا که گفتیم آقا الان مکانیابی از تا گرمونه آقا الان مکانه های مسلح های نماز جمعه معاملن بهترین جاهای شهر و رسی و بی کار معطل افتاده فقط کل افتاده این اینها رو بیان چیز درست بکنند و بساطه اسلامی در از مردم قرار داره مجانی مدیریتش در بازار اون وقت اشتغالش هر کسی دیگه نمیتونه بگه آقا من شغل ندارم هر کسی تو رو میگه شغل ندارم با اتاب و شتاب شدید ارزد برو بازار برو برو تو بازار هیچ هم نداره جارو رو بزن نیجا بشین خدا روزی میرسونه. و داره تو امادیس مختلف داره خب برو ببین که خا... کی... چی میخواد تو بازار رو برو بگرد جاها رو پیدا بکنی کسی میاد با من خب من شما چی لازم. دارم خدا چیز خب اینقدر با همچنین که قیمت هست میخواید من میرم برد میخورم میرم بهت میخورم یعنی بدون هیچ سرمایه این طرف میتونه شغلش داری و این کار بالاتر از این چون هر کسی میتونه بیاد حضرت تصریح دارن لا یبی یدیعن نحاضر لباد کسانی که حاضر تو شهر هستن از بر کسانی که تولید کننده هستن از خارج میادن حق ندارن مجبورشون کنید که ما باید بر شما بفوشی این که چه تأثیری رو میذاره الان افرادی که میخوان کار بکنن تولید میکنن مثلا سبزی فرو سبزی داره میکنه سبزی میاره میوه تر بار میگن حق نداره تو بفروشی باید این رو بفروشی به این سایب مغازه که بودن بعد این بفروشه به اون تیزه خود. دقیقا خلاف سراحت رسول الله همین سرون ناشت که ها قلوب هم فرم بگه و بذار با مردم چرا حتما بعد واسطه بذاری؟ چرا توجیهش این که آقا اینا مالیات میدن شد آلا جاده بیجازی که آقا خراجم توی بازار نباید بشه وقت نتیجهش میتونیم چیه؟ نتیجهش میشه که الان سبزی رو از مغازه، از تو سر زمین از سر زمین چقدر میخرن؟ همین سبزی خوردن کلی دو هسته هزار. چقدر دارم به شما مفتوشی بیس هزار تا آقا، اون هم بیاد بیس هزار تا هم اما اشکال نداره. اگر او هم بیاد همونجا بفتوشه بیس هزار تا وقت تولید اه... کاشت سبزی انقدر میسرسه همه تو خونه‌هاشون یه باقش کوچک هم داشته، باشن فبزی و وقتی از چطور میاد کنید؟ اصلا مشکل تولید ما همین دلالی هاست همین انحصار که نه تو حق نداری بزنیش و چون مسئله بازار توریست که سر راحت میتونن بیان انحصار بکنن به شدت دولت رو اسلام اینجا قبیه کرده ورود بکنه همه چیز رو بگیر در اختیار مردم بذار راحت حتی مکان را هم تو بگیر همون در اختیار مردم بذار بفهمت عزیز دلم نگویش شما چه انقدر ساده نگاه میکنی. الان دیگه تکنولوژی پیشرفت کرده. همین رو بالاترین خیلی دخترشو میگه تو فضای مجازی انجام نمیدن. میگم مایه انجام نمیدن. بذار نشوم. خب. من نگفتم که حتما مجبورش رو هر کس خواست خودش بفوتو خودش بزوش هر کس نخواست میگه مجبورشون نکنید همین, همین شخص همین شخص همین شخص ممکنه اهل خانواده ای داشته باشه که بی کاره یا آقا بعدازا تو بیا اینجا این کارا تو بشین من خودم برسازید تو بیشت این چیز میکنم با هم سوزش رو نست میکنی مزاربه, مزاربه. اینطوری میگه تو مجبوری او رو بفروشید و چون او هم خیداده ایش که دو میموند به حداقل اقل به قیمت خب این رو میگه بیاد با اینطور مزاربه می‌کنیم تو برمنش رو سود نست نست هرچی سود میکنیم نست نست تاجران اصلا یکی از تاجره ها چیکار میکنن؟ نمیدیم که واسط بد است اونها خوب تحجیب باید شما میگیم شما که میگین من میگم نباید انحصار نباید الزامش بکنید که تا اتمن باید به این تاجره بسوشیم اینه انحصار اگر میتونه خودش به رو اگر نمیتونه به دیگر رو به این کار تاجر داره خدمت اقصر. این که میگه دلال دلال بد نیست لازم من به شرط اینکه خدمت اقتصادی ارائه بده. الکی اضافه نشه. بعد از این دلالی آقا اینطور میره میوه سر با. اصلا مشتری خود این پیدا میکنه. اینجا نه تو نمیتون اینطور. اول باید به من به این نکر اینجوری بعد این. یا من خودم رفتم تو آخه چه خدمتی داره به من ارائه تا که من آوردم این از جاده اون میاد میبره. این اشکال داره. این که اشکال داره. ولی بعضی دردادی ها ارائه خدمت میکنه کالایی که دور از دسترس هست میاره در دسترس من این خیلی خوبه نه اصلاح ساختار و انحصارات مقابله کردن این انحصار ایجاد بکنی که تو از خارج اومدی حق نداری تو اینجا بفرشی بازار ماست نه این اشکال داره اگر خواست به شما بفرش و شما بفرش اگر نخواست به خودشون بفرشی الان خود مییم خودش بپوش شهرداری میاد امشین پلتون در میاره با ما... اونجا که هیچی که خیابون و ماشین بیاد بیشارت میکنن. چرا توجهشون که نکن اونها به فروش اون مالییت ب پول ما میاد اینطور چه مالییت بهمون مییم؟ الان بله متاسفانه قبل همینطوره رو و توی ساختدارایم همین ق تل... میشه تل... تل... تل... مثلا اون خود دولت روان فرهنگیان خدا خیره واقعا میگم فرهنگیان آقا چی گفته که دولت باید بیاد این وضع احتضای آموزش فرداشو ایجاد بکنه یعنی چی این وضع کجا پیغمبر اکسمان گفت شما حالیتون نیست نمیفهمید فهمید نفهمید بلد نیستید استاد معلم برای بچه هاتون بگیرید من مالیت ازتون جمع میکنم مالیتتون رو جمع میکنم بعد میدم به یه ادر رو بیارم عجیر من بسن پیغمبر برای حتی برای حداقل برای تعلیم قرآن نمیتونست این کار رو بکنم مدارس تشکل بده مدارس این همه پیغمبر روی تحصیل علم و اینها تأکید و گفت خودتون برید تشویقم کرد معلم رو تکریم بکنید الان مسئله آموزش پرورش یکی از هر کشوری و هر دولتی داره میشه یه طریق افراد زیادی که باید بشون حقوق بدن وقت معلمم کار نمی کنی. چون کار کردن او تو استخدام هم دیگه کار بکنم اینکه تو باید روغمون ولی وقتی که بگیم نه مردمی باشه خیلی مثال خوبی زدیم پدر مادر ها مستقیمند با معلمین ارتباط بقیر بکنم پدر مدر ها اینه آن خلانی طلبت درس کنده یافت کار او تو میتونی بیا یه بچه‌ام درست بدی مسئله نظارت بر آموزش و پرورشو علمو نمیگم اون دولت بیاد امتحان برگزار بکنه ولی مسئله اقتصادش رو دارم میگم اقتصاد آموزش و اینطوری معلمه اگر بد کار بکنه دیگه ثروتش نمیکنه میگم دیگه معلم دیگه‌ای دل نسوزونه دروتش نمیکنه وقت همین حضینه که از مردم میگیرن با باقی از بر بشه. شما میدونید 3 درصد من بودجه ما خاطر برای آمودش بر و آمودش حالیه سی درصد کل بودجه خب یعنی اگه از مردم نه همین را اگر مستقیما به مردم بدن بدن که آقا شما بیا خودتون معلم بگردید معلمان خود پیدا بکنید حتی هم نمیخوام بگم مدل من اینها ها اینا خوب درجه بکنید برای اینکه مردم اجیر نباشن مثلا تو مطعه آموزش فروش که هم کلیفیت ها رو ارده پایید برام دوستم توی کرمان چندین مدرسه فوقلاده موفق زده خودش تربیت هست مدرس موفق یه مؤذر ما اینه ما طلبه ها رو میاریم اینجا اولش که میخوام اینجا شد ابداع دارن خلاقی بعد وقتی رسمی آنوزش بربرش می شون همین اینا ازشون گرفتی میشه شون هر چیان کار کن تو رو خدا بود. خصوص میشن شن آرومان. اصلا عجیلی می شکش اینه چون تو, حقوق... چون تو حقوق تو کار کرده تو تأثیر گذار مشکل ادارات ما اینه نا کنید ساختار دیگه ایست و اصلا میخوام بگم ما و اینطوری مردم رو قوی کردیم. به جای اینکه سروت های مردم رو دید جمع بکنیم یه جا. مردم زدید میشن. به این چیز نگاه بکنید این پایفون نگاه بکنیم. اگر اقتصاد سرمایه خرد خورد داشته باشه. یعنی چیم مثلا با 20 واحد به اقتصاد بتونن فعالیت اقتصادی داشته باشه. شما فرض این, این کل مردم اقتصاد تو جامعه هستن بعضی 90 واحد دارن بعضی 80 واحد دارن بعضی 70 واحد بعضی سی بعضی پوزه طبیعتا اونایی که پایین 20 واحد دارن نمیتونن خودشون مالک فقالیت و خوششون باید عجیر باشن میشه چقدر؟ خب تقاضای کارگر زیاد میشه؟ تقاضای کارگر زیاد میشه؟ ارداشت کمه قیمت عامل کارم بالاست اصلا قیمت خوب. بعد وقتی سرمایه برید بیشتر بشه هستار کارهای اقتصادی حتی باید هستار درصد هستار واحد بله حتما باید بیاد بله که تو کارها همزش پروش برد این مدرسه خصوصی بزنه اون مدرسه خصوصی زدن باید بیاد چه مجنفزه ها اینها رو بگیره این چقدر مداد معلم و چقدر بعد آشپس با نمیدونم براشون نازم و معاون چقدر هزینه های سازم حالا بلاخر آدم بخواد تو کار, فعال، کار فرهنگی فعالیت اقتصادی بکن چقدر باید سمایی خب این وقت سماییش میره بالا تباید هفت ساد واحد نشه طبیعتا فقط اونایی که بالای هفت وارد دارن مالک اقتصاد بقیه عرض کننده عجیر هست یعنی عرض کننده بقیه میشن عجیب تعداد کارگران زیاد میشن طبیعتا حقوقات میشه حد حالا اگر سرمایه بری میشه نوز وارد فقط یه درمون دارن مالک باشن که وزید بقیه همه باید عرض کننده کار باشن اون وقت توی همچین چیزی که انحصار سرمایه وجود داره اصلا دستموزها عادلانه میشه چون این ها تعداد زیادیتن مجبورن عجیر باشن دارن میان تقاضا کار میدن برای همین همیشه کار فرماها میتونن تو سرشون بزنن همیشه اونها دست بالا رو دارن بازار موقعی قیمتش عادلان است که توش انحصار و اعتکار نباشی, نباشی. بازار عوامل تولید دیگه عرضه کننده تولید تقاضی. نیروی کار تقاضه کننده نیروی کار فشاری که اینطوری اون وقت تمام سود این بازار و این اقتصاد به اون یه درصد میرسه یک دست مزهد رو چون مازاد تقاضا وجود داره به اینها میدن حالا از رو صدق سرشون با دادن مالیات و بیمو اینها خواستن یه جور اینها رو تأمین بکنن چه فشاری به امور مردم میاد تا الو وقت نیاز به تمنش ما اصلا این سبتون بگیم ما نظام اقتصادی اسلام طوری تر شده که اصلا احتیاج به یکم دارم گندگویی میکنم اصلا احتیاج به زکات هم نباش این یعنی اصلا تو اقتصاد که با خاطر تجمیه سروت هی تولید فقر میشه بعد هی میخواند با مالیات و بیمای تمنشت او این رو درستش بکنه ولی وقتی که این سروت خوری تقسیم بشه که همه مالک فعالیات باشمشون در مدت به جایی میرسه که نه فقط شنیدید تو روایات که امام زمان بیاد دیگه کسی مستحق و کار پیدا نمی شود. توی حتی حکومت‌های اسلامی هم که داشتیم ما زمان‌هایی رو داشتیم عمر زم... بن عبدالعزیز که یک کم به احکام اسلامی عمل می‌کردن سال خب خلفای پیشو گفته بودن زکات ها زکات‌ها جمع کنیم بفرستید برای حاکمات در که خلاف اسلام اسلام گفتید تو همون منطقه خرج بشه عمر بن عبد گفتش نه به اسلام عمل بکنید، خرج بکنید، و هیچی رو به من نفرستید چند جا هست؟ چه آذربایجان هست، اتفاق سال بعدش یک سرگم زکات رو برای اونجا رفستم این آقا چی شد من گفتم نفرسید میگم نه ما همه رو حضمینه های فقرار تا یک سال تأمین کردیم اضافه اومد سال بعدش نت رو سال بعدش کل زکات رو فرست دارم یک دو نقطه هم نبود یک کم به احکام اسلامی خوب عمل کردم. نظام اقتصادی قلبی و شرقی مبتنی برای اینه که ما یک کاری میکنم و این هم استدلال دارن که کسان اقتصاد اینطوری میچردن بعد یه تغییر فقیل برد رقوشن یه تولید فرق رو با این تجمیع سروتی که ایجاد شده و مردم باید اجیر باشن و این کسرت اجیر باعث کم کم شدن دست موزه بعد حالا با های مختلف میخوان بیان این رو دون درست بكونه اما نگاه نظام اسلامی اصلا کلا متفاوزی و یکی نا یک نیست بحث ها خیلی خب به خاطر این استقبالی که رفعا کردن بحث شرکت کردن خیلی هم خوب بود خب بر اساس روند خودش سر ما هم خیلی دیگه فرصت نداریم 12 جای بعد خارج از اون باشم برای همین همجا بحثم رو تمام میکنم و السلام علیکم و رحمت و سلام